کتاب کیمیا اثر نیما سواری نقض آزادی از دیربازی بسیار دور زمینی پدید آمد و این دایره سرگردان در جو و خیشان زندگی آفری جانداران بسیار در آن زندگی کردند آنان به غریزه بی مدد از قوه تعقلی که ما میشناسیم آرام در کنار هم زندگی می کردند و هر کدام صاحب دیار و در کنارش منزلتی بودند گاهی اوقات یکدیگر را می دریدند و این چرخه از پیش درها برایشان رقم خورده بود و خیشتن در آن نقشی نداشتند و برای زنده ماندن باید چه کار می کردند و زندگی می گذارندند. لیک به حقوق یکدیگر فرای این جب تخطی نمی کردند و در آرامش کنار هم زندگی می گذراندند. هرچند دنیا دنیای ناب ها و زشتیها بود. لاکن آنها عشق می برزیدند. فرزندانشان را از آب و گل در می آوردند و به طول زندگی گاه به هم نوع و فرای هم به جان دیگری جان می بخشیدند و کمک می رسندند. و این دنیای آرامشان در حال گذر بود تا اینکه جهان جاندار تازه‌ای به خود دید همانند آنان بود اما با تفاوت‌های ملموس هرچند که نخستین روزهای پیدایشش بر زمین تا این حد با دیگران تفاوت نداشت و مثال دیگران زندگی می‌کرد اما این تفاوت انگاری ها و این قصه شوم از روزی شروع شد که در وجودش چیزی فراتر از دیگر جانداران شکل گرفت هر روز بر این قوه تازه زهود در جانش اضافه کرد مدت زیادی نگذشته بود که احساس فخر تمام جانش را در نوردید و حال میخواست فراتر از دیگران باشد نه به چابکی جانداران دیگر بود نه قدرت و درندگی آنان را داشت و حال میخواست با همان قوه نوظهور از دیگر همسانان خیش پیشی بگیرد و در این رقابت خود پادشاه جهانیان شود. در دل ترس ها داشت. از صدای رد به خود میلرزید. گاه چیزهایی می دید که قدرت درک آن را با مدد از همین قوه نوظهور نداشت و هر روز بیشتر به این گرداب عظیم از ترس فرو می رفت اما باید به کمی پیشترها هم نگریست آنجا که هنوز در این سرگردانی فرو نرفته بود و آرام مثال دیگر جانداران زندگی می کرد. نه حریص خوردن تن دیگران بود و نه خون می ریخت که او به ذات از این جدمنشی بر هزار بود بیشتر دوستاش تا در کنار آتشی که تازه از نبوغ خود که کرده به دیگر همجانانش گرمایی اتا کند درد تنهایی را با آنان در میان بگذارد و دستی از روی نوازش به سر همجانانش بکشد و آن جان زیبا هم با کرشمه آرام او را به زیبایی های این دنیا نزدیک تر کند اما حال دیگر زمان تغییر کرده بود این قوه نوزهور که آن را عقل می قرار بود بر جانش بیشتر از تمام قوه های دیگر جانداران کار کند و قدرت به او بیفزاید رگیشه این برتلی تلبی را در میان همان ترس های دیروزش باید جست. آنگاه که در کنار آتش از صدای دیگر جانداران می ترسید و به خیشتن می لرسید. با خود دور می کرد این توان اندوخته در جانش را می گفت باید فراتر از همجانان به پیش رود و این سکان کشی را به دست گیرد کشتی به سازد و دریاها را فتح کند فاتح جهان شود و همه جانداران در برابرش به خاک بیفتند نه اینها های آن روزهای او نبود و شاید بود. نمیتوان کرد که او با چنین احساسی دست به خلق قدرتی بزرگ زد و یا خالقی قدرتمند او را به این ورته از دیوانگی رساند. هرچی که بود چیزی نگذشت تا او خیشتن را در این رقابت خود ساخته در برابر قدرتی بزرگید. قدرتی که مالک همه چیز بود. پاسخ تمام پرسشهایش را میداد و هرچه که او در این دنیا با قوه نوظهورش پاسخش نداشت، نزد آن قدرت بزرگ نفته بود. قدرت بزرگ هر روز بیشتر از پیش جولان میداد و خاصه تازه داشت. او تمام جهان را میخواست. همه را مملوک خود می‌دانست و چیزی نگذشته که همان جانهای تنها و آرام تبدیل به بردگانی در برابر قدرت متعال شدند و دست و پابسته در برابرش به خاک افتادند و او فرمان راند از او امر بود و از اینان اطاعت پادشاه بزرگ خودخواستهی که بر تخت قدرت تکیه زده بود و دیری نگذشت که اینان از این همه هقارت به تنگ آمدند و باید که چارهی می جستند آری آنان هم می تا فرمان روا شوند آخر کمی دورترها هم چنین فکری به این قوه نوظهور رسیده بود می به واسطه همین قدرت تازه پادشاه جهانیان شوند حال که آنها خیشتن را در بردگی و حقارت میجستند باید بردگان و حقیران در پیش رو داشتند تا این چرخه هغارت را به آنان باز پستهند و در سرآخر این قصه شوم خیشتن را اشرف و بزرگ جهانیان باید که می خوندند. و به آمال پیشترها چنگ و از حقارت امروز کم می کردند. در این حقارت و بازار حقیر و بردهداری جهان خیشتن برده قادری دور از دنیا و قدرتی لایزال شدند و بر زمین هرچه بود باید حقیر و برده اینان میشد و اینگونه دنیای آراممان را به جنون گرفت حال آنان باید قدرت خیشتن را به اثبات میرساندند و بر تختهای زرین ساخته شده به دست دیگران بر عظمت و شکوه مینشستند و سوار بر گرده دیگران فخر می فروختند. این احساس را به آنان داده بود قدرتی بزرگ که در آسمان ها به ایشان حکومت میکرد و حال خلیفه و جانشین بر زمین را همین تن خاکیان قرار داده و هر جان زمین را برده این بزرگ منصبان میدانست. حیوانات به زیر یوغ اینان در آمدند کشتند آتش زدند و قربانی کردند گاه به شکار رفتند، گاه به اسارت گرفتند، گاه شکنجه دادند و گاه برای تناول خون خوردند. خیشتن را صاحب و مالک میدانستند و این جماعت همجان خیش را کهتر از خود پنداشتند. آخر آنان از خون و کشتن هراس داشتند. به ذات درنده نبودند. لیکن مگر میشد شد به قوه نوزهور اینان و فریات های آسمان مالکی آرام و دور از این وحشی خویی ها به میان آورد پس خون خواستند کشتند و خونها را مکیدند و هر روز در این دیوانگی ها بیشتر به پیش رفتند حال باید پا را فراتر گذاشت آن قدرت در آسمان ها که اینان را به حقارت برده بود و هر روز می گفت تا به پایش بوسه زنند هر روز از آنان مجیز و سنا و می میخواست درد این همه حقارت را اینان به کجا می بردند حال باید به هم نوعشان هم قره میشدند آنان را نیز به زیر چتر اسارت خیش در می آوردند. باز دیوانگی ها به پیش رفت جان بیارزه شد و مالکان بیشتر از گذشته خیشتن را در پوسینان قدرت در آسمان ها زدند و در این دیوانگی ها از همه پیشی گرفتند زن اسیر شد و برده اینان بود تفه را به اصارت درآوردند و میدانهایی ساختند که همه را بفروشند و بخرند. جان همه بیارزش بود یک جان در آسمان صاحب همه جانها و کمی دورتر بر زمین جانشینی که اشرف بود و مالک همه جانها. و این سیر دوار بیشتر پیشرفت و این دیوانگی ها در جان آدمیان لانه کرد و جهان را سوزاند و خاک سر کرد هر روز بدتر از پیشترها بود مادری که فرزندش به دنیا نیامده تومه دیوانگان میشد آن را می فروختند حیوانهایی که نه جان بودند و نه ارزش و این اشرف دیوانه هرگاه به هر طریقی به زشتی جان آنان را درید و در این حمام پر از خون هر روز دیوانهتر شد در این روزگاران دیوانگی بود که جان آرام و به دنبال صلح و آرامش برخی از این جانها به درد آمد آنها نه را اشرف خوانده نه به قدرتی والا چشم دوختند که خیش را به خاک انداختند و هر روز در این یکسان انگاری پیشتر رفتند. نه کاری فراتر از خیشتن نکردند که در واقع خود را به اصل و جوهره پیشترها رساندند. باس همینان بودند که در برابر این زشتی ها قد علم کرده و هر روز برای پیشبرد و بهتر شدن دنیای جانداران تلاش کردند جانهایشان را تقدیم کردند تا جان دیگر انسانها آزاد باشد و بردهداری از میان برود هر روز در برابر این دیوانگی های ساخته به دستان بشر اشرفت شده در خون و زشتی گام برداشتند تا دنیای بهتری بسازند باید در این راه مقدس و پاک در کنار هم بود و هر روز به پیشرفت نگاه کرد و برای جانها ارزشی والاتر از همه جهان قائل شد در راستای همین پیشرفت ها و سامان بخشیدن به دنیا خواستیم دنیای بهتری برای جان والا و مقام حیوانات بسازیم. لیک خیلی از روزگاران پیشتر دور شده ایم و باید بیشتر از گذشته تلاش کنیم. باید این قوانین در سراسر جهان قوت گیرد و اجبار شود. برای ساختن جهان آرمانی و آزاد بیشتر و فراتر از این قوانین باید نگاشت. باید جان را ارزش والای جهان کرد و برای جان جان داد تا همه به آزادی در نهای معنایش دست یابند و این گام های کودکانه و دست و پارفتنها آغاز کار ماست باید در این راه پرسنگ لاخ در کنار هم بود هرچند که من این قوانین با همه وجود نقد دارم آن را سراسر شکال می بینم آن را تخفه میدانم که جهان و جانها هبه نمیخواهند. این آزادی حق همه جانهاست نه تحفه و لطفی از سوی ما لیش در این برهوت و ظلمات سراسری جهان با باید به این شهم کوچک و کمسو چشم دوخت و خواست با همه جان آتش مشتعل این راه گران شد قانون حمایت از حقوق حیوانات در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. این قانون که رسما در تاریخ 15 اکتبر 1978 در شورای مرکزی یونسکو اعلان گردید و در سال 1989 مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال 1990 با بازبینی نهایی به رئیس مجمع عمومی یونسکو ارائه گشت دارای ده ماده است این قانون حکم همان شمع را در جهان دارد که باید در کنار هم و برای آزادی همه جانداران همه در پیش آن در سراسر جهان و در عین حال برای بهبودی و پویاییش تلاش کنیم. در ابتدا متن کامل این قانون را عرض می‌دارم تا با هم و در کنار هم بیشتر با این قوانین آشنا شویم. و در انتها به مواردی که در آن زشتی و های دنیا کماکان نقش دارد و حقا باید این موارد از این متن جدا شود و جای در درخوری برایش بجوییم می‌پردازیم. باشد که به آرمان بزرگمان جهان پاک و آزاد دست یابیم و روزی را شاهد باشیم که هیچ جانداری در هیچ جای جهان مورد ظلم قرار نگیرد. به امید آن روز که نزدیک تر از جانهای ماست بیانیه جهانی حمایت از حقوق حیوانات به طور کامل ماده اول تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند این حقوق مساوی گونه مختلف و خاصی را تحت شعا قرار نمی دهد ماده دوم به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود. ماده سوم حیوانات نباید در معرض برخوردهای بد و اعمال بیرحمانه قرار گیرند. اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد، این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد. با جسد یک حیوان، با شایستگی باید برخورد شود. ماده چهارم حیوانات وحشی حق زندگی و تولید مثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند. محرومیت طولانی مدت از آزادی برای حیوانات وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان سرگرمی و نیز هر گونه استفاده از حیوانات وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادی است. ماده پنجم هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد. حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید به طور غیر منصفانه ای ترک و یا کشته شوند. هر گونه زیاد نسل و استفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی و رفتاری آن گونه باشد. در نمایشگاه ها، نمایش ها و فیلمهایی که حیوانات در آن شرکت دارند باید منزلت آنها محترم شمرده شود و آری از هر خشونتی باشد. ماده ششم هر گونه آزمایش زجرآوری بر روی حیوانات چه به صورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می‌گردد. روشهای جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند ماده هفتم هر گونه عمل غیرضروری ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد یا هر گونه تصمیمی که منجر به این عمل گردد جنایت علیه زندگی تلقی می گردد. ماده 8. هر گونه عمل مقایر با بقای گونه های حیوانات وحشی و یا هر گونه تصمیمی که منتها به این امر گردد هشدار دست جمعی تلقی می گردد. حیوانات وحشی آلوده کردن و نابودی زیستگاه‌هایشان قتل عام محسوب می‌گردد. ماده نهم شرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق آنان توسط قانون مشخص می‌شود. محافظت و حفظ امنیت حیوانان بر عهده سازمان‌های دولتی است. ماده دهم ده مراکز تربیتی و مدارس مکلف آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن مراعات و درک حیوانات از دوران توفولیت به شهروندان خود هستند بیانیه جهانی حمایت از حقوق حیوانات بندهای مورد نقد ماده سوام اگر نیاز به کشتن حیوان باشد این عمل باید آنی بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد با جسد یک حیوان باید با شایستگی برخورد کند گاه که به غار تنهایی خیش پناه میبرم و در آن سکوت و در آن تنهایی خیشتن به یاد دنیای انسانی و جهان پاک حیوانات می‌افتم تمام جانم درد می شود و احساس رخوت و مرگ تمام دنیایم را فرا می‌گیرد چگونه در این شورزار دیوانگی ها فریاد برآورد که آدمی چندی است در این دیوانگی های خودساخته خیشتن را محق به جان دیگری میپندارد؟ چندی است که صاحب همه جانها شده است؟ حال در این دیوانگی ها لطف و مرحمت و توخفی به و در از خویش میبشد؟ گاه بر جان انسانها مالک می شود. و در قدرتش جماعتی را به اسارت می‌کشاند حاکم شهر فریاد میزند که جان و اسارت و آزادی آنان در اختیار همین دیوانگان در قدرت است و حال اوز که با عصای پادشاهی در دست فرمان به قد صادر میکند و گاه کودکان و زنان و سیل مردان بیشمار را به کنیزی و بردگی میکشاند و در بهترین حالت جهان انسانی به آنان فدیه می آزادی مدفون در ذهن خیشتن را و چه سزاوار جماعتی شکوه و بخشایش و بزرگی او را تمجید خواهند کرد کیست که این دیوانگان را از خواب قفلت هزاران ساله برخیزاند که او آزاد بود و تو بزشتی او را به اسارت کشانگی و هیچگاه به واسطه قدرت بیشترت مالک کس نخواهی شد که اگر دنیا را بر پایی قدرت بیشتر قانون نهین چندی نخواهد گذشت که همه به اسارت دیف درخواهیم آمد هر روز به طریقت این زشتی ها رنگ و روی گرفت هر روز قدرتی بزرگتر به پیش آمد و یک روز به واسطه شمشیر برامتر و کمی بعدتر به واسطه علم جنگ افزارگ پیش رفته تر مالک جان تیگران شد و باز در این مرداب حماقت کشتند و اسیر بردند و هبه کردند جان از آن خودشان را و بزرگ و باوقار به تخت صلح و دوستی و در جایگاه مهر چمبره زدند. و مصیبت‌های حیوان جان والا و پر ارزشم که تا این حد انسان و انسانیت بیمارگونه در توهمی هزاران ساله اسیر است و هر روز را صاحب می شود و نمیخواهد بپندارد که کسی صاحب دیگری در این جهان نیست و قدرت چیزی بر کسی نخواهد افسود که ما به واسطه تعقلمان من باید جان بخش دنیا باشیم و حال با این تقل خیشن را به دیوانگی های انسان و انسانیت تسلیم کرده و قدرت منتر هر پیشتری با وحشیگری و زیستفتی در حال سلاخی دنیا به پیش میروی چند سال باید سخنگفت و فریاد زد، جان باخت و زندگی ها را در رنج و عذاب به پایان رساند تا که انسان به معنای برابری دست یابد و بداند این قدرت به کسی چیزی نخواهد افسود. این معنای بازگشت به دیوانگی های هزاران بار زهشتر از قانون جنگل گذشته های دور ماست. حال انسان هر روز خیشتن را مهقتر بر جان دیگر جانداران میپندارد و حق زیستن را از آنان روبوده است و در بهترین حالات دنیایش و از میان افکار روشنترین آنها باز هم کشتن دیگران را حق پنداشته و ای برای کمتر درد کشیدن جان جانان ارزانی میدارد و با ردایی از کبر و قرور و بزرگواری به تخت سلطنت خیش باز می گردد و باز هم فرمان روایی خواهد کرد لیک حال آن روزهای حماقت بشری گذشته است حال آزادگانی پا به جهان گذاشته که فریادشان واژگونی این تاج و تخت است از ریشه برکنده خواهد شد هر نامی که در خیشتن قدرتی را به اثارت درآورده و به واسطه این قدرت کسیف به جان همگان قره شده است هر روز کسی را می‌درد و باز کسی را به اسارت کشیده و سرآخر برای تصدق و ذکات ایمان مریض و دیوانوارش به کسی جان خیشتن را تحفه میدهد که ای دیوانگان این جان از آن او و مال خیشتن است. باید که این کرسوی امید را واژگون ساخت اگر لفظی به کشتار جانها از خیش برآورد. باید بدانند حیوان مثال انسان به دنیا آمده جان با ارزشی دارد و همانند ما تمامی احساسات را درک می کند. درد، ترس، حیجان، عشق، استراب همه و همه را بیشتر از ما شناخته و درک کرده است مادر می شود و عاشق همسرش خواهد بود و اصلا فرای اینها هرچه که باشد هیچ انسانی حق گرفتن زندگی آنها را نخواهد داشت که اگر به واسطه قدرت اینگونه گونه میکنید به قدرت پیشرفتن جهان را ویرانه ای خواهید ساخت همان گونه که به سوی دیوانگان پیشترها می و خورده می گیرید از آنانی که به واسطه قدرت کشتند و سوزاندند خیشتن هم همین دیبای قدرت را به کنار افکنید همتای دیگر جانداران به قدر منزلت همانان لیک به واسطه احترام بیشتر به جانهای آنان و حمایت از حقوق حق و پاکشان خدمت کنید تا بزرگتر از دیگران باشید و این بار رقابت را میان مهر و دوستی آورید و چندی پادشاه این طریقت پاک باشید ماده چهارم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 هر گونه و به بند کشیدن حیوانات و شکار کردن آنها تحت هر لوای و در این حال هر گونه دخل و تصرف در زندگی حیوانات با هر دلیل و برهانی مقایر با حقوق حقه حیوانات است. باید برای این قانون جنگید و در کنار هم این دیبای قدرت و غرور کاذب را از تن انسانیت برکند تا همه یکسان در آرامش و آزادی که از آن خیشتنمانه است زندگی کنند هر لفظ را در لفافهی نگاه داشتن همان زشتی و هبه کردن حقی از حقوق حیوانات است و این خیانت به روان پاک آزادی و روشنگره رو به فردای زشت و در اسارت نگاه داشتن همه جانداران و به انسانها خواهد بود ماده پنجم حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید به طور غیرمنصفانه ای ترک و یا کشته شود. هر گونه زیاد نسل و استفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی و رفتاری آن گونه باشد. ترکیب دو واجه تحت هیچ شرایطی با به طور غیرمنصفانه از سوی قانونگذار چه معنایی خواهد داد؟ آیا باز هم به دنبال دریچهای برای کشتار حیوانات می تا باز با بازی الفاظ به میان آید طریقت زشتی و حقوق حقه پایمال شده؟ آیا بس نیز این هزاران سال عذابهای ما به روح و روان حیوانات؟ که در قانون و حمایت ما نیز دوباره دریچهای برای دیوانگان بگشاییم تا با تفاصیر وحمالودشان از انصاف و ادالت کمر به کشتن جانداران زنند؟ آیا امروز دیگر زمان آن فران نرسیده تا این بازی با الفاظ را به کناری زنیم و یک بار هم که شده در کنار هم و با هم فرای بازی با کلمات محکم و قدرتمند از آن کنیم که تحت هیچ شرایطی آدمی نمیتواند به هیچ جانداری آزار برساند. در گفتنها و فریاد زدنها مخشم و استوار باشیم که چشمان منتظر این سیل جانداران امروز به همجانشان بسته و میخواهند آزادی خیش را با پیشرفت انسانها در مهر یک جا ببینند در کنارمان در جشن احترام به جانها شرکت کنند و نترسند از اینکه شاید روزی دیوانه ای انصاف را در قتل عام جانها دید و یک بار به واسطه گشنه بودن و لذت بردن از خون دست به کشتار زد و بار دیگری این بار باید مجلسی ترتیب داد که همه همجانان به کنار هم آزاد و بی ترس گام بردارند مثال دنیای امروز ما نباشد و حیوانات از زیدن شمایل این موجود دو پا فراری نشوند نگوشه خلوتی را برای دوری جستن از ما نجویند یک بار بدانند ما همجان و همراه برای احقاق حقوق والایشان آمده که با هم در آزادی جهان جشن شادمانی بگیریم حال زمان آن است که بگوییم انسان نمیتواند از حیوانات سو استفاده کند نمیتواند از آنها نسل بکشد و این تحت هیچ عنوان و لوایی حق نخواهد مود ما برای رهایی دادن آنان و کمک رساندن آنها از هیچ فروگذار نخواهیم بود که همجان ضعیف در از ما در انتظار یاری رساندن ماست کسی چنین حقی نخواهد داشت که به هر واسطه در زندگی، زیستگاه، زیاد نست، آزادی، جان و همه و همه حقوق حقی حیوانات تخطی کند. این بدان معناست که حقوق حیوان بی هیچ کم از سوی انسان عدا خواهد شد و هیچ سخن در لفافهی در این میان جای نخواهد داشت و انسان جز از راه خدمت و یاری رساندن به حیوان چیزی برای حیوان از حق و قوانین وزن نخواهد کرد ماده ششم هر گونه آزمایش زجرآوری بر روی حیوانات چه به صورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می گردد جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند باز هم همان دریای کبر و قرور انسانی که خیشتن را محق و مالک میداند و حال با چهره آرامتر و معقولتر رخت دیوانگی پیش را به لباسی از مکر و فریب امروز بدل ساخته تا باز هم حیوانات را دهد و جان والاترین ارزش زندگی آنها را بستاند و ای برای رنج کمتر بردن آنها به دیشان ببخشد که او سراسر سخافت و رفعت است. اما بیایید با هم دور کنیم. آنان هزار است که فریاد میزنند ما زندگی را دوست داریم. خیلی فراتر از انسانهایی که آمار بریدنشان از دنیا تحت بیماری های روانی و خودکشی‌های های گاه و بیگاهشان اثبات کرده که به واسطه ساختن چنین دنیای مریضی تا بدین سان از جهان و زندگی بیزارند لاکن حیوانات پاکجان آشقانه زندگی را دوست دارند و این تلاش مداوم آنان را برای زیستن میتوان به این عشق و زندگی گره زد آنجا که پرندهی برای تصاحب عشق جاوزانش به زمین و آسمان چنگ میزند و از تلاشی فروگذار نیست، خانه اینی خیشان را میاراید تا همسر آرزوهایش گام در این خانه پرعشق نهد ند و با هم به درازهای همه عمر و فادارانه زندگی کنند. و در برابر قدرت آسمان ها به ایشان داشتن چهار همسر عقلی و بیشمار کنیز و مطعه را ارزانی داده است که معنا کنند درس وفاداری را که وفادارانه برای همسر زنده است و فرزندانش را با همه عشق از آب و گل بیرون خواهد آورد و در کنار هم پرواز میآموزند و سیل بیشماری از هم در این زیافت مهر و عشق در کنار آنها خواهند بود و همه یک صدا فریاد میزنند ما عاشق زندگی کردن هستیم. حال انسان باید همه زشتی ها را از دنیای بیمارش دور کند. شاید کمین این آدمیان به قلو زنجیر مانده در دیوانگی ها از پوسین پرنفرت در آمدند و زندگی امید داشتند برای رسیدن به دنیای بهتر باید که دست ظلم و قدرت از گرده‌های نحیف حیوانات و تمام مظلومان برداشته شود که این نخستینگام ماست برای تصاحب و ماندگاری آزادی هر روز در پیشبرد و بهتر شدن دنیا و کمک رساندن به هم در تلاش باشیم و ثمره این تلاش ها را نسل‌های آینده خواهند دید و روزی از این روزگاران دیوانگی ما تحیر خواهند کرد. به مثال باور ما، از سیمرغان اجدها تنها به کتاب های طویل خاطر نشان می کنند. و آنها را در خیالاتش هر روز به یک سیما درآورده و هیچ باور نخواهند کرد. سر بریده بینه ها حیوانات را به دست ما. ماده هفتم هر گونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد یا هر گونه تصمیمی که منجر به این عمل گردد جنایت علیه زندگی تلقی می کردد. باز هم دیوانگی انسانها و ناامید شدن ما از حمایت حقوق حیوانات باز هم همان ردا و باز هم همان تکبر و مالک بودنها که ضرورت را ما به وجود آورده و در شناختان دستمان دستمان باز و آسوده است که ما صاحب همه جانها بودیم و این مالکان دیوانگی گاه ضرورت را به قربان تفسیر خواهند کرد و گاه به سیر شدن و خونخاری یک روز شکار و یک روز باز هم همان داستان دیروز است و این بار قصه گوی ای آرام و ملایمتر از کشته شدن برادرانمان من برای من گفت باز ما را مسخ شده به اندرس های دیوانگان گوش فرادادیم، شاید شاد شدیم و دست به هم زدیم و صدای عربده های شادی من خیشتن را کر کرده است. اما این کر شدن چه ارتباط به ندیدن داشت؟ داشته آن را باید از میان این توهم هزاران ساله دریافت. آنقدر به ما افسودند و خود به خود پیش رفتیم که دیری نپایید خود را صاحب جهان دانستیم و حال اگر ضرورت داشت میکشیم و اگر نداشت شاید هم که نه لطف میکنیم و همه باید به خاک و سجده افتند از این همه بزرگواری ما حقا دیگر باید به این دیوانگی ها خاتمه داد باید برای جانها ارزش خائل شد و جهانی لایق زندگی همگان ساخت و به آرمان پاکمان افسود و هر روز برای رسیدنش همه در کنار هم تلاش کنیم باید برای دستیابی به آزادی که حق مسلم همه جانداران است از جان بگذریم و امید داشته باشیم همچون همان پرنده وفادار و زیبا که در همه عمر ام امیدش به عشق سرشارش میان خیشتن و همسرش بود و عاشقانه زندگی را دوست داشت ما هم به واسطه ساختن دنیایی بهتر و آزادی همگان دنیا را دوست بداریم به امید دوست داشتن خیش و همه جانهای دنیا